این داستان هانس جوجه تیغی یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون کشاورزی بود که از مال و ثروت زیادی بهرهمند بود و تنها چیزی که نداشت اولاد بود هر وقت به بازار می رفت کشاورزای دیگه سر به سرش می زاشتن و می که چرا فرزند نداره یکی از روزهایی که همه سر به سرش از کوره در رفت و گفت بزودی صاحب فرزندی میشم که مثل جوجه تیقیه. طولی نکشید که فرزندی با بالاتنه جوجه تیقی و بقیه اندام یک پسر بچه نصیب او شد. وقتی چشم همسرش به این فرزند افتاد، وحشت کرد و فریاد زد، این بچه بود که آرزو کرده بودی؟ مرد جواب داد، فعلا چاره ای نیست، باید یه اسم براش انتخاب کنیم. زن گفت ما غیر از هانس جوجه تیقی نمیتونیم اسم دیگه ای براش انتخاب کنیم. وقتی کشیش اومد که بچه رو قسل تعمید بده گفت او به خاطر تیقهاش نمیتونه توی گهواره معمولی بخوابه. بنابراین یه حسیر پشت اتاق پهن کردند تا بچه روی اون بخوابه. هشت سال آزگار هانس جوجه تیقی روی اون حسیر زندگی کرد تا اینکه پدرش به سوتوح اومد و آرزو کرد که فرزندش از بین بره. ولی هانس جوجه تیقی زنده موند و با سستی و کاهلی به زندگی خودش ادامه داد. یکی از روزها کشاورز تصمیم گرفت به بازار مکارهی در شهر مجاور بره. قبل از رفتن از همسرش پرسید چه چیزی میخوای که از بازار براش بیاره. همسرش گفت مقداری گوشت و چند که نون. از خدمتکار خونه هم پرسیدن به چه چیزی نیاز داره. خدمتکار در جواب گفت چند تا و یه جفت جوراب دست آخر از هانس پرسید که چه چیزی دوست داره تا براش بیاره. هانس جواب داد پدرجان برای من یه نیمبان بیار. پدر وقتی از سفر برگشت برای همسرش گوشت و نان برای خدمتکار ظرف و یک جفت جراب و برای هانس یک نیمبان آورده بود هانس همین که هدیه رو گرفت گفت پدر جان به دنبال آهنگری برو و بگو خروس رو آماده کن چون میخوام سوار بر اون از اینجا برم و دیگه برنگردم پدر از شنیدن این حرف خوشحال شد و رفت خروس رو آماده کرد هانس سوار شد یک الاق و یک خوک نر رو هم برداشت تا با خودش ببره تا توی جنگل از اونا نگهداری بکنه. وقتی به جنگل رسیدند در حالی که او سوار خروس بود خروس پرید بالای درخت. او سالها از بالای درخت مراقب الاق و خوک خودش بود. در طول این مدت پدرش ازش خبری نداشت. هانس روزها بالای درخت نی می نواخت و نوای نی در جنگل تنین میانداخت. روزی پادشاهی راهش رو توی جنگل گم کرده بود و از نزدیک اون درخت عبور می کرد که صدای نی رو شنید. خیلی تعجب کرد. همراهای خودش رو فرستاد تا ببینن این صدا از کجا میاد. اونو اونا همه جا رو گشتن. بعد دیدن که یک جوجه تیغی که پشت خروسی نشسته سرگرم نواختنه. پادشاه گفت: او بپرسید چرا بالای درخت نشسته و آیا راه خروج از جنگل رو میدونه یا نه. هانس جوجه تیغی از درخت پایین اومد و به پادشاه گفت که حاضر راه برگشت رو بهش نشون بده، به شرط اینکه پادشاه قول کتبی بده. وقتی وارد قصر شد، اولین کسی رو که دید در اختیار او قرار بده. پادشاه فکر کرد مگه یه جوجه تیغی چقدر شعور داره؟ قلمی برداشت روی کاغذ چیزی نوشت و به هانس داد. هانس هم راه برگشت رو بهش نشون داد و پادشاه با خوشحالی به قصر خودش برگشت. دختر پادشاه که چند روزی میشد پدرش رو ندیده بود، ذوق زده شد و به طرف پدرش دوید. او رو در آغوش گرفت و بوسید. بلافاصله پادشاه به یاد هانس جوجه افتاد و برای دخترش تعریف کرد چه جانور عجیب و غریبی دیده. و گفت که او جونوری شبیه جوجه تیقی بود که بر روی یک خروس سوار شده بود و نمی‌زد. حتی موضوع قولی رو که داده بود با دخترش در میون گذاشت. شاه به هانس دست داده بود ولی چه همیتی داشت که سواد خوندن نداشت. شاهصاد خانم هم دلش نمیخواست به دست جانوری عجیب و غریب سپرده بشه از اون طرف هم هانس خیلی خوشحال بود که از گله حیواناتش نگهداری میکنه و بالای درخت میشینه و نیمی نوازه دست غذا چند روز بعد گذر پادشاه دیگری به اون جنگل افتاد او هم همراه درباریانش توی جنگل گم شده بود همونطور که در میان درختا سرگردون بودن نوای نی به گوششون رسید. پادشاه به خدمتکار دستور داد که برن و ببینن این صدا از کجا میاد. خدمتکار ها دوروبر رو گشتند تا پای درختی رسیدند که روی شاخه های اون یه جوجه تیغی روی پشت خروسی سوار بود و نی میزد. یکی از خدمتکار از هانس پرسید اون بالا چیکار کار میکنی؟ هانس جواب داد من از اینجا از گله خودم مراقبت میکنم شما اینجا چیکار کار دارین؟ خدمتکار گفت که اونا راهشون رو گم کردن و اگر اون راه رو نشون نده نمیتونن به سرزمین خودشون برگردن هانس همونطور که پشت خروس نشسته بود از درخت پایین اومد و به پادشاه کوهنسال گفت به شرطی حاضر راه برگشت و نشون بده که پادشاه اولین چیزی رو که هنگام ورود به قصر دید در اختیار او بذاره. پادشاه دستش رو تکون داد و شرط رو پذیرفت. بعد هانس با خروسش پیشاپیش پیش پادشاه و همراهانش براه افتادن و مسیر رو به اونها نشون دادن. به این ترتیب پادشاه تونست به سلامت به سرزمین خودش برگرده. وقتی شاه وارد قصر شد اده زیادی به استقبالش اومده بودند ولی جلوتر از همه دختر کوچولو و زیبای اون بود که دوان دوان اومد و اونو بغل کرد و بوسید. دختر از پدرش پرسید که این همه وقت کجا بوده؟ پادشاه از سرگردانی خودش توی جنگل برای دخترش تعریف کرد و گفت که جنگل انقدر بزرگ و انبوه بود که اون فکر میکرد برای همیشه اونجا گم شده. تا اینکه به یک مخلوق عجیب الخلقه رسید. نیمی به شکل جوجه تیخی و نیمی به شکل آدم که سواره ی روی شاخه درخت نشسته بودش و نیمی زد. پادشاه ادامه داد و برای دخترش تعریف کرد که چطور این مخلوق عجیب و غریب از درخت پایین اومد و راه را به اونا نشون داد. ولی براش شرط قائل شد. شاه گفت که باید اولین چیز یا کسی رو که در مرقه ورود به قصر دیده در اختیار اون آدم جوجه تیغی نما بذاره. و این مسئله اونو نگران کرده بود چون دخترک پدرش رو خیلی دوست داشت از خوشحالی دیدار اون گفتش که هر وقت اون حیوان عجیب و غریب بیاد حاضره باهاش بره از اون طرف هانس از گله خوک خودش که روز به روز بزرگتر می مراقبت میکرد. تعداد اونا به حدی زیاد شده بود که سراسر جنگل رو پر کرده بودن هانس تصمیم گرفت جنگل رو ترک کنه برای پدرش پیغام فرستاد که تمام استبلهای روستا رو تمیز و تخلیه بکنه چون به زودی با گله بزرگ وارد ده میشه و هر کس که بخواد میتونه یکی از خوکها رو بگیره و بکشه. پدر از شنیدن این خبر ناراحت شد. طولی نکشید که هانس سوار برخروز وارد روستا شد. جلوتر از او گله بزرگ خوکش وارد روستا شدند. سر و صدای خوک تا فرسنگ ها به گوش می رسید. هانس در روستا توقف کوتاهی کرد و فقط نزد آهنگر رفت تا افزار و یراغ خروس رو تعمیر کنه. بعد دوباره به راهش ادامه داد. پدرش نیز از این بابت خوشحال شد و فکر می کرد ممکنه با رفتن هانس دیگه هرگز اونو نبینه. هانس رفت و رفت تا به سرزمین نخستین پادشاهی رسید که در جنگل راهنماییش کرده بود. پادشاه قبلا در شهر جار زده بود به طرف هر کسی که دیدن روی خروسی نشسته و یک نی به همراه داره تیراندازی کنن و اونو بکشن و نذارن که وارد قصر بشه. وقتی هانس وارد این سرزمین شد ادهی با سرنیزه اونو محاصره کردن. ولی خروز پرید و روی دروازه ورودی قصر فرود آمد. هانس از اونجا خطاب به پادشاه گفت که باید به قولش عمل بکنه و الا هم اون هم دخترش رو نابود میکنه. پادشاه که دید هوا پسه نزد دخترش رفت و التماس کرد که تسلیم بشه و زندگی خودش و اونو نجات بده. سرانجام دختر با رنگی پریده خواهش پدرش رو اجابت کرد. پادشاه کالسکی با شش اسب سفید خدمتکار پول و جهیزیه در اختیار دخترش گذاشت. اون موقع هانس با خروس و نیش سوار کالسکه شد و کنار شاهزاده خانم نشست. وقتی کالسکه حرکت میکرد پادشاه به این فکر میکرد که فرزندش رو از دست داده و دیگه هرگز اونو نمیبینه. کمی که از شهر بیرون رفتن هانس روسری شاهزاده را کنار کشید. با خارهایش به او حمله کرد و گفت این هم پاداش حقه و کلک از جلوی چشمم دور شو من هیچ کاری با تو ندارم و با این توهین دختر را به حال خودش رها کرد هانس همچنان سوار بر به راه خودش ادامه میداد تا به سرزمین دومین پادشاهی رسید که اون را از سرگردونی توی جنگل نجات داده بود دومین پادشاه دستور داده بود تا اگر کسی سوار بر خروس وارد شهر شد اونو با عزت و احترام و با فریاد هورا و زنده باد به طرف قصر راهنمایی کنند همین که چشم شاهزاده خانم به این مخلوق عجیب افتاد وحشت کرد ولی کمی که گذشت به خودش اومد و به یاد قول پدرش افتاد شاهزاده خانم حتی به ازدواج با او هم تن داد دور میز مهمانی کنار او نشست و با هم خوردند و نوشیدند. شب موقع خواب شاهزاد خانم گفت که به خاطر خارهای پشت جودتیقی نگرانه. هانس گفت نگران نباش چون به تو صدمه نمیزنه. هانس به پادشاه گفت که چهار مرد رو برای نگهبانی کنار در اتا خواب بذاره و دستور داد توی محبته بیرون آتیشی برپا کنند تا وقتی اون وارد اتاق خواب میشه و پوست جوجه تیغی رو در میانه، اون چهار مرد بلا فاصله پوست رو بردارن توی آتیش بندازن و اونقدر کنار آتیش باشن تا پوست جوجه تیغی کاملا بسوزه و خاکستر بشه. وقتی ساعت دوازده شد هانس جوجه تیغی وارد اتاق شد. پوست جوجه تیغی رو در آورد و کنار تخت گذاشت. اون چهار مرد زود دویدن اونو برداشتن و توی آتیش انداختن همینطور که آخرین تیکه های پوست خاکستر شد هانس به شکل یک انسان معمولی در اومد که چهره سیاه داشت پادشاه به دنبال پزشک خودش فرستاد و پزشک هانس رو با روغن شستشو رو داد تا پوستش سفید و شفاف بشه به این ترتیب هانس به جوانی خوش سیما تبدیل شد صبح روز بعد که شاهزاده خانم همسرش رو با شکل و شمایل تازه دید از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید. اونا تصمیم گرفتن بار دیگر بساط جشن و سرور و عروسی راه بندازن. پادشاه کهنسال اون سرزمین در همون جشن سلطنت رو به هانس بخشید. بعد از چند سال پادشاه جوان همراه با همسرش به خانه پدرش رفت. و به او گفت که پسر اوست. کشاورز گفت که فرزندی ندارد. زمانی فرزندی داشته که تنش مثل جوجه تیغی پر از خار بوده و او هم به سفر دوری رفته. پادشاه بیشتر توضیح داد و ثابت کرد که فرزند اوست. کشاورز از خوشحالی نمیدونست چیکار کار کنه و سرانجام همراه با پسرش به قلمرو سلطنتی او رفت.